اوزو بالله من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام السلام علی نبینا و آله تاکرین. خدمت عزیزان دانشوی خودم حرص سلام دارن صبح خیر عرض می کنیم انشاءالله که از نعمت صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و انشاءالله که از هر گونه گنافتی هم به دور متاسفانه هفته قبل به دلیل به همریختگی سیستمی که بود موفق نشدیم در خدمت شما باشیم این هفته امیدواریم که بتوانیم جبران کنیم بعد در خدمت شما بهتر باشیم ما بحثمون در بحر کامل بود. بهر کامل رو برای شما قسمت اولش رو به طور مشروح بیان کردیم. قسمت دومش که در مجوز بود باقی مند که انشالله امروز برای شما میخوام. برای اینکه بتونیم مبحثمون رو جمع جور کنیم یک مقدمه ای رو اول میگیم که بتوانیم برسیم به سر مطلب برانشالله اون قسمت انتهایی رو خواهم خوند گفتیم که بهر کامل متشکل از شش تا متفاعلن متفاعلون، متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن این بحر کامل و نوع تامش شیشتا متفاعلان ستا در صدر و ستا در عجز. کلیدش همین بود. کمل الجمال من البهور لکاملو. کمل الجمال من البهور لکاملو. متفاعلون متفاعلون متفاعلون. تغییراتی که تو این بحر پیدا می یکیش زهاف بود زهاف ازمار و قبلا این زهاف ازمار رو دیده بودیم که ساکن کردن حرف دوم تفعیل است یعنی متفاعلان تا مته بشه متفاعلون و متفائلان تعبیر نمیشه بهش میگن مستفعل این زحاف در همه انواع بحر هست خیلی هم زیاده و زهاف هست جاری مجرای علت نیست لازم نیست ادامه پیدا کنه و هر تفعیله‌ای هم که بهش داخل بشه بهش میگن مزمره این از زهافش که متفاعلان شه مستفعل دوم علت قطع بود که حذف ساکن وتد مجموع و تسکین ما قبل اون یعنی در واقع گفتیم که ساکن وتد مجموع رو حذف کنیم و متحرک ما قبل اون ساکن رو ساکن کنیم یعنی وتد مجموع تبدیل بشه به سبب خفیف و این تفعیله ضرب داخل میشه دوست شد این علت اونم در تام در تفعیله ضربش داخل میشه و متفاعلان رو اون ایلان متفاعلان رو تبدیل میکنه به فعلا گاهی اوقات میشه این فاعلاتن زحاف ازمار داخل میشه یا دومین حرفش ساکن میشه فاعلاتن میشه مفعولن این زحاف ازمار اینجا لازم نیست یعنی میتونه یک بار فعلاتون باشه بار دوم بشه مفعولن بار سوم دوباره بشه فاعلاتن و تفعیله که این علت به داخل شه بش میگن؟ مقدوره. پس بطهد مجموع تبدیل میشه به سبب خفیف. متفاعلان تبدیل میشه به فعلاتون. گاهی اوقات فعلاتون زحاف ازمار به داخل میشه میشه مفعولون. و این زحاف ازمار هم لازم نیست. با اونی هم که این بهش داخل بهش میگن مقتوعه این علت بهش داخل شبش میگن مقتوعه و علت که قبلا خوندیم جاش توی عروض و ضربه حالا این کجا واقع میشه این علت گفتیم که داخل میشه در ضرب اونم در تام در ضرب داخل میشه اونم ذ طوم سهم علت هزز بود علت هزز چی بود حذف وتد مجموع این وتد مجموع رو حذف کن از تفعیله متفائلن متفائلن این الن حذف شد خب اگه حذف بشه میشه فعل این علت لازمه و در تفعیل متفائلن در عروض زرد داخل میشه و گاهی اوقات هم زفاف ازمار بهش داخل میشه و اونو حرف دومش فعلن رو ساکن میکنه میشه فعلن اینجا اینجا ازمار جاری مجرای علت است در ذلول یعنی اگر یک کسی شاعری آمد متفائلون رو فعلون کرد باید فعلون ادامه بده اگر فعلون نکرد فعلون کرد باید فعلون ادامه بده پس این خودش دوتا میشه یعنی دو قسم میشه دو قسم میشه لذا توی تعبیراتی که ما با هم خوندیم دو جور خوندیم یکی کامل احض خوندیم که یعنی فعلان بود ضرب و عروضش یکی هم کامل احض مزمر خوندیم که این کامل احض مزمر عروضش فعلان بود ضربش فعلان دوتا بود دو جور؟ کامل احض و کامل اهظ مزمر توتام کامل احض عروزش فعلون ضربشم فعلن و دیگه اون موقع بیت مسرم و غیر مسرمش هم فرقی نمی کرد. اما کامل احض مزمر چی؟ اون عروزش فهلون. زربش فعلان اینجا بیت مسرله و غیر مسرله با هم فرق میکرد اون موقع در بیت مسرلهش عروضش هم تا به زربش میشد می فعلان از بیت دوم دیگه عروض میشد می فعلان زرب میشد فعلان اینها رو با هم خوندیم که دو قسم چهارم علت ترفیل بود که این در واقع یه چیزی اضافه می شود. یه سبب خفیف به وطن مجموع اضافه می شود. یعنی متفاعلون می شد متفاعلاتون خب این قاعدتاً متفائلاتن بشه یه چیزی بهش اضافه بشه خب این توی تا... تامش نمیاد چون تام تا متفاعلون داره به حد کافی دراز هست این مال مجزوعه که در مجزوع وقتی متفاعلون،, متفاعلون متفاعلون متفاعلون متفاعلونه یه ذره به شاعر این اجازه رو میده که یه کمی از مجزوع بلندتر استفاده کنه یه سیلاب بهش اضافه میشه متفاعلاتن خب حالا این متفاعلاتون تو مجزو میاد این علت لازمه بله و گفتیم گاه اوقات اینو ده گفته بود که ما گفتیم می گاه اوقات به همین متفاعلاتون زهاف ازمال اضافه میشه و تغییرش میده به مستفعلاتن و این لازم هم نیست این چیزیه که درس امروز ماست که ما متفائلاتن داریم به جای متفائل و گاهی اوقاتم زما فزمارش داخل میشه میشه مستفعلاتن و مستفعلاتون شدنش لازم نیست این درس امروز ماست نگاه کنید به میگه که انواع المجزوع انواع المجزوع مجزوع کامل یه تعلق من تفعیلت متفاعلون مجزوع کامل تشکیل میشه از تفعیله متفاعلون حتکر رو در حالی که تکرار میشه اربع امرات چهار مرتبه از متفائلن تشکیل میشه در حالی که چهار مرتبه تکرار میشه الا نحوه تالی تام به 6 بار تکرار میشد مجزوء چهار بار یک متفائلن از صدر و یک متفائلن از عجز حذف شده یعنی وزن سبکتر و کوتاهتر و تندتر شده متفائل متفائلن متفائل متفائل ضربش اونطر شد انواع المجزوء مجزوء الكامل يتألف من تفعيله متفائل تتكرر 4 مرات علم نحو التالي متفائل متفائل متفائل متفائل و اهم و انواعی دیدیه. مهمترین نوهاش اینایه که با هم میخونیم یک الف دارد و یک به دو جزء اینا دو قسم مجزوع بهر کامل علف الکامل و المجزوع و از صحیح و. کامله یعنی تفعیلش متفاعده داده. مجزوع یعنی چارتاست متفاعلون متفاعلون متفاعلون متفاعلون صحیحه یعنی چیزی که قابل ادامه باشه توش نیست یعنی اما متفاعلون خودش و هوه ماکانت تفعیلت و عروضهی متفاعلون و ضربهو مثله ها عروضش متفاعلون ضربش هم مثله متفایلون متفایل نه به قول شاعر مانند قول این شاعر که ضربش تومتر شده زربان حالا آیا اینجا بیت مسره و غیر مسره فرق میکنه؟ نه عروض متفایلون زرب متفاعلن متفایلون متفایلون متفایلون متفایلون تا آخر قصیده هر بیتش تشکیل از چهار تا متفاعلان شده و هیچ چیز قابل ادامه ای هم توش نیست نه قول شایر ادبایی احسن و ما توقل ردو ام دما یقعون ندا ادبایی رو احسن و ما و دو این دمایقه اون ندار بیتو همینطور وزن و تفتیه اون خواهد بود تا بیت آخری که این قصیده داشته باشه داشت. تیر اسم جمعه یعنی پرندگان و هم داره که تیرن عبابیل این عبابیل بدل از تیرن دیگه تیرن پس جمعه که این عبابیل یعنی پرندگانی از نوع عبابیل رو فرست دادیم تو سوره فیل عطایرا الفلام داره اسم جمع هم هست میشه عطایرات یعنی پرندگان تمامی پرندگان و احسن و ما تو غردو غرده یو غردو یعنی آواز کند تقرید یعنی آواز کندن غرده تا ارو یعنی پرنده آواز کند احسن و ما او ما بهش میگن مای مستریه ظرفیه میشه احسن و ما تو دو احسن اضافه شده به ما او ما مای مستریه است دیگه تو غردو زمیر ضمیر فایلش چون طیر جمع بوده اسم جمع بوده تو آورده</thead> احسن و ما تو غردو ما این ما باز مایه مستریه زمانی است یا ندا. قون نداء یعنی شبنم ببینید اینطوری میشه اهل الطیرو احسن و وقت تقریدها، ها احسن و وقت ها تعویل به مصدر میره دیگه ما تو احسن و وقت تقریده ها این وقوع این در وقوع این مستری است یه زمانی هست چون این هست این وقوع ندا این ندا حالا ترجمه بکنیم و احسن میشه مبتدا این میشه خبرش یعنی ثابتن این میشه خبرش این جمله میشه خبر ادتیر میشه ادتیر رو احسن وقت تقریده ها پرندگان زیباترین زمان آواز ثابتون هست اون ثابتون متعلقه یهنده که خبره است هنگام اند نزد وقوع ندا هنگام واقع شدن شبنم میگه هنگامی که شبنم بر شاخه درختان می نشیند یعنی در صبحگاهان بهترین وقت خواندن آواز پرندگان است پرندگان بهترین وقت آواز خواندنشان هست هنگام واقع شدن شبنم بر درختان نستیدیم که شعر رو ترکیب کردیم که بتونید معنا کنید اتایی احسان و ما این ما مای مستریه است مستریه میشه احسان و وقت تقریده احسان و مبتده اند زیباترین وقت خواندنشان اند این اند ظرف دیگه خبر شده برای احسن یعنی ثابتون اند هست موقعی که واقع شود ها هست موقعی که واقع شود شدنم یعنی هست در نزد واقع شدن شد پس از احسن و تقریده ها دا این دا وقوعه ندا این دا وقوعه ندا اد تیرو اه اد تیرو اه مصطف اشکال نداره زهاف ازمار گفتیم که میاد و جالی مجرای چیزی هم نیست اینجا شاید مصطف علان گفته تو بیت بعد ممکنه همینجا بشه متفاق برا آتی اه سنم تو کر سنم تو این سالم است. ردو این دماغ متفاوت اون سالم است. یا ندا اون ندا متفاعلان آیا این متفاعلان ها ممکن بود بشه مصطفع الان؟ بله تو آیا اون مصطفع الانه ممکن بود متفاعلان شه؟ بله زحاف دیده میشه حالا اینجا تو اولی دیده شده ممکن, دو با سه با با ممکن دو دو باشه سر باشه چهارم باشه ممکن تو دوتاش باشه ستاش باشه یکیش باشه الملاحظ اونی که شما ملاحظه میکنید در این بیت اینه. آنچه ملاحظه میشه اینه. ان و الازمار قد دخلت على التفعيله الاولى. این که زهاف ازمار داخل شده بر تفعيله اول فقط. و يمكن ان دخلت على تفعيلتي العروض و الضرب. حالا که تو هش داخل شده. تو اولی ولی ممکن بوده حتی توی عروض و ضرب داخلشه یعنی تو دومی و چهارمی. هیچ فرقی نمیکرده هر کجا که وارد میشد قابل ادامه نبود هر کجا وارد میشد قابل ادامه نبود لزومی نداشت ادامه پیدا بکن اتایی رو احسن ما تو غره دو یقعون ن این یا اگر یادتون باشه، خدای یادتون هست، اینکه یک بیتی ما داشته باشیم که کلمه ای نیمی از اون در مسروای اول آمده باشه یعنی در صدر و نیمی از اون کلمه در مسروای دوم آمده باشه یعنی عجز این نوع بیت رو بهش میگفتن بیت. مدور یعنی الان این بیت بیت مدور چون توقر و دو توقرش اینور مونده ردوش اون طرف این بیت بیت مدوره کش میگن بیت مدبره. حالا بیت دوم سوم چهارم هم همینطور بوده متفایلون متفایلون متفایلون متفایلون ممکنه متفایلون ها در این از زحاف داخل شد بشه مستقل اتایی احسن و مات و غرن دو اندما یقعون ندا الملاحظو انه زحاف ازمار قد دخل على تفعیلت اولا فقط تو این بیت فقط توی اولی داخل شده و یمکنه انیت قول علا تفعیلت ای از زر علا عروض و سر ممکن بوده حتی در تبیین عروض و ضرب هم داخلشه و قابل ادامه هم نیست. خب این تمام شد چیز صادق. دوم الکامل و المجزو و المرفل و که علت ترفیل داخلشه. یعنی خوندیم متفاعلن بشه متفاعلاتن. متفاعلاتن. و گفتیم گاهی اوقاتم به این متفاعلاتن زحاف ازمار داخل میشه میشه مستفعلاتون و اون زحاف ازمارش جاریم از علت نیست یعنی ممکن بوده یه جا بشه متفاعلاتون یه جا بشه مستفعلاتون و المجزوع و کامله یعنی که تفعیلش متفائلونه مجزوعه یعنی چار تا متفاعلونه مرفله یعنی که یکی از متفاعلان ها که آخری باشه شده متفاعلاتون م? یعنی ضربش به جای متفاعلان شده تون. یعنی تو همون بالایی بیت بالا که الان خوندیم که مجزوه کامل صحیح بود اگر اون چهارمی که یقع اون ندا به جای متفاعلان میشد متفاعلاتون میشد این یکی میشد این دومی. دو و ما شاعر باید در تفعیل چهارم به جای متفاعلن میگفت متفاعلا و میتونست زحاف ازمارم بهش داخل شه بشه مستفعلاتن و این زحاف ازمار هم جاری مجرای علت نبود. یه ملاحظهش آیا آیا در اینجا بیت مسرده و غیر مسرده فرف میکنید برد چون عروز تابه زرب شد الکامل و المجزو و المرفل به هوا ماکانت تفعیلت و عروزهی متفاعلان عروزش متفاهده. خب و زربهو مرفلا اما زربش مرفله یعنی متفالا یعنی یه بیتش این میشه یه بیتی میشه متفاعلون متفاعلون متفائل متفاعلاتون چهارمی متفاعلاتون دیگه تا آخرم همینطوره مگر بیتی مسرع باش متفاعلاتون ولقصاید المنظومت و علاها زلبه کسیرتون قصایدی که در این بحر سرود شده یعنی بهر کامل مجزو مرفل زیاد بلغزار دل تو و علا حاضر بر یعنی میخواد بگه که این نوع زیاده نه این که این بیشتر از اون قبلی ها اون کامل مجزو صحیح استعمالش بیشتر از اینه چون راحتتر از اینه چهارتو متفاقیلون است و شاعر پشت سر همین این نسبت به اون کمتره اما فی نفسه به حد خودش که نگاه کنیم زیاده یعنی اگر مثلا ست تا ما قصیده مجزوع داشته باشیم شست تاش از اون نوع اول و چلتش از این نوع زیاد ولغصار در منظومت و علاها زربر کسیدتون و قول عبی نواس مانند قول آقای ابو نواس. آیا این که آن شما دارید میبینید به مسرع داره؟ نه لذا متفایلون،, متفایلون، متفایلون، متفایلون، متفایلاتون دوباره متفایلون، متفایلون، متفایلون،, متفایلون، متفایلاتون و ممکن است متفایلاتون آخر وجهاش مستقلاتون بیاد یعنی زحاف ازمارم بهش داخل شه بشه مزمره مرقفله مزمره بودنش لازم نیست اما مرفله بودنش لازم خب بخوانیم دیگه بلد شدیم چیز سختی هم نبود لا تطلبن لای ناهیه است از کجا فهمیدیم لای ناهیه است چون با نون تأکید اومد اومدی لا تطلبن دونو و دا باز بیت ما مدوره دارن داشینور رنش اومد لا تطلبند دو دنو مستر دنا نو دنا نو یعنی نزدیک شد دنو یعنی نزدیک شدن دانی یعنی نزدیک قریب لا تطلوبا دو و دارن من خلیل او معاشر خلیل یعنی دوست معاشر یعنی کسی که انسان باهاش معاشرت داره اونی که آدم باهاش معاشرت داره سلام علیک داره رفته آمد داره خلیل اونی که نه خیلی دوسته میشه دوست و آشنا مثلا. درست کسی که باش ما میگه لاد بطلبن دوست و آشنا که میگی دوست خیلی نزدیک داره به ماست و آشنا. آشنا رو باش سلام اکی داریم و بقول خودمون ممکنم از رفته آمد تا شوشیم اما دوست همیشه پیش ماست. اون خلیل ماست. لا تطلبن میگه طلب نکن نخواه حتما نخواه نزدیک بودن منزل رو از خلیل دوست یا آشنا میگه یه کسی دوست شماست آشنای شماست اینو نخواه که حتما 24 ساعت کنار باشه اینطور نباشه که دلت بخواد یه دوستی آشنایی همیشه 24 ساعت در کنار تو باشه اینو نخواه نرو دنبال این که دوستی آشنایی منزل او اینکه که منزل گفته منزل یعنی که در خدمت تو باشه در کنار تو باشه نزدیکی منزل رو از دوست و آشنا نخوا مفهومش هل چی؟ یعنی سعی دوری باشد و دوستی لا تطلبا ندون و مفعول لا تطلب است. دون و دار من خلیل او معاشر از هیچ خلیلی یا از هیچ معاشری آشنایی نزدیکی منزل را طلب نکن. چرا این بیت دوم دلیلش اب قال اسباب المودته انتزور ولا تواشر یعنی ولا تواشرت مبدت یعنی دوستی مد دوستی کرد و یعنی دوست مودت مستر می میشه یعنی دوستی کرده اب قال اسباب المبدته. یعنی لاسباب الحب یه ابغا خبر مقدمه اون انتظوره ولا تو عاشره اون انتظوره تحویل و نستر میده مبتدا میگه زیرا پایدارترین علتهای دوستی ابغا باقیترین علتهای دوستی چیه؟ اون پایدارترین چیز برای دوستی، اینکه دوستی بمونه، پایدارترین علتها برای دوستی چیه؟ انتزور، اینکه تو زیارت کنی، دید و بازدید کنی، کسی رو ببینی، معاشرت با اون داشته باشی. ولا تو آشرت. اینکه ببینی ولی باهاش معاشرت همیشگی بگی، نداشته باشی، زیارت باشه، معاشرت نباشه. یعنی همون دوری رو دوستی میگه اگه میخواد دوستیت بمونه باقیترین علل پایدارترین علت برای اینکه دوستی بماند برای باقی ماندن دوستی پایدارترین ها اینه که تو ملاقات بکنی کسی رو ببینی اما معاشرت نکنی یعنی دوری و دوستی از پیغمبر خدا هم روایتی نقل شده که به کسی اینطور فرمود او زیاد میآمد هی و مزاحمت نسبت بود برای نبی گرامی اسلام این پند حکیمانه رو دار که زور قببن قبب واقعی، زرق بند، تزدد و بند. تزدد، مجزوم است در مقابل زرق، تزدادو بوده گفت زرق بند، قب قب، یعنی گاه گاه گفت زرق بند، یعنی گفت زیارت کن، دید و بازدید کن ملاقات کن قببند یعنی گاه گاه یه روز باشه یه روز نباشه یه روز در میان دو روز در میان این طور هم دیگر رو ببینیم زر رب بند تزدد و حببند اون موقع حب و عشق علاقه زیادتر میشه دلمون بیشتر برا هم تنگ میشه اگر کنار هم بخواد 24 چار ساعت معاشرت باشه این هم مودت و دوستی دیگه عادی میشه کم میشه و همین که اختلافات رو میشه حالا اینم هم همین میگه میگه اب قال المبد دفع دت عن تزورنا تو باز ببین دوتا بیت از یک قصیده رو کرده هر دوتاش تاش هر دو تاش لا تطلبند دنوا و دا خب دار رن من خریلن عو معاصر ابرقال عسباب المد دت ان دزور و لا تا آشت. خب شیرشام از بر اخلاقی بودن. لا تطلبند مصطفی او اوموز است باش تو عصی ماست. ند نوا و دار متفاوت اون صاد ماست. اینجا عروس می‌بینید متفاوت. لن من خلی مستفعدن. لن او معاشر مستفعلاتون این مزمره مرفل است مزمره بودنش لازم نیست اما مرفله بودنش لازم مزمره بودنش لازم نیست اما مرفله بودنش لازم یعنی ممکنه توی بیت بعدی اینجا متفاعلاتون بیاد ابرو نعس مصطفی علون بابل مود مصطفی علون دت عن تزو دت عن تزو متفاو علون سالم است لولا تو عاشر لولا تو عاشر و عاشر متوائلات حالا تا مثل صدوم هم توی عجزش همینطوره متوائلاتون ممکن از متوائلاتون تبدیل بشه به مصطفیه این دو نو مجزوع کامل هست و ما دیده. حالا نگاه کنید نلاحظ ما میبینیم ملاحظه میکنیم فی هازین البیتین در این دو تا بیت ان ذهاف الزمار قد دخل علی التفعیلة الاولى این که زحاف ازمار داخل شده بر تفعیل اول و سالسه و رابع افل بیت اول ذهاف ازمار داخل شده بر تفعیله اول و سوم و چهارم در بیت اول درست داخل و علا تفعیلت اولا و ثانیه به تفعیلت ثانی و در اولی داخل شد و دومی در بیت داخل درست شد. و هو ولی سبه لازم و این زحاف هم لازم نیست برای همینم ما میبینیم توی بیت اول دومیش نیست ولی تو بیت دوم تو دومی هست. تو بیت اول تو چارمیش هست. تو بیت دوم تو چارمیش نیست. با اون که چارمی زرب بیته ولی نیست. پس این نشون میده که زحاف اینجا جاری مجرای علت نیست و شاعر لازم نیست که اون رو ادامه بید. خلاصه بحر کامل که امروز من در واقع بحر کامل رو از ابتدا که شروع کردم یک بار دیگه به طور خلاصه بیان کردم ولیانا اینجا خلاصه شد بود. خلاصه تو بحر کامله و حوالا نوعین تامل و مجسول تام داره و مجسول یدخل و زحاف و ازمار تفعیلاتهی و ازمار داخل میشه به تفیلاتش هشون و عروزن و زربن هم در هشش هم در عروزش، یعنی آخرین تفعیله مصرهای اول و هم در زربش، یعنی آخرین تفعیله مصرهای دوم، یعنی اجوزه بید و خواه خیلی رو لازمه این زهاب هر کجا بیاد نیست الا یجا الا ازاده دخل ما علت الحزز مگر زمانی که با علت حزز بیاد یعنی فعلان رو بکنه فعلانه الا ازاده مع علت لحظه فی تفعیلت ضرب اونم در تفعیل ضرب اونم در تام بعد میگه تدخولهو علت قطع علت قطع بهش داخل میشه فی تفعیلت ف فتام در تفعیل زربش در تام فتغیر و متفائلون الى فعیلاتون به فعیلاتون تبدیل و گاهی اوقات یایتون باشه گفتیم این فعیلاتون میتونه زهاف ازمار بهش داخل شه و قد یلحق و ها بل اضافت ایلا علت و ازمار و یغیر و هایلا مفعولون و گفتیم این لازم هم و حوض غیر رو لازم و تدخونه های علت های حزز در تقییل زرب فتام در تقییل زرب تام باشه علت حزز داخل میشه یعنی میشه متفاعلان رو میکنه فعلان فتغیر و متفاعلان الافعلان و گاهی اوقات لازم میشه که به گاهی اوقات به این فعلان زهاف ازمار داخل میشه میشه فعلان اینجا جاری مجبه علت که شد دو غز الا و قد یلحق و حاول اضافت علال حززه زهاف و رزماره فعلون و هاذ الذهاف یجری مجدد اللف اینجا زافت جاری مجوی علت دو قسم یکی کامل احذ بود یکی کامل احذ مزمر بود یکی کامل احظ بود و دیگری کامل احظ مزمر بود دو قسم یجب علی شاعر شاعر واجبی که اینجا غیر از علت حز زحافظ مار رو هم ادامه می‌ده. و تدخل و علت و ترفیل علت ترفیل هم بهش داخل میشه متفائلون میشه متفائلاتن. الا تفعیلت ضرب فل مجذور من حز تفعیلت ضرب مجذور داخل میشه فتوحولوا ها الى متفائلا تن اونو تغییرش میده به متفائلاتن. گفتیم دنبالش بنویسید که گاهی اوقات اینجا توی متفاعلاتون زهاف ازمار داخل میشه آه. و اگر زهاف ازمار داخل شد این جاری مجرای علت نیست و لازمم نیست یعنی بنویسید وقت یلحقوها زهاف ازمار وقت یلحقوها زهاف ازمار فیغیرها الى مصطفعلاتون فیغیرها الى مستفعلاتن با حوال بلازم لازم این زهاب ازمار در اینجا لازم زهاب ما در اینجا لازم خب بحر کامل رو خوب کنیم الحمدلله ولی حالا می‌خوایم بریم سر بحر خفیف بحر خفیف این بحر خفیف مبحث امروز ماست که نشان الله میگه بعد از اینکه ما چهار بحر رو به طور کامل برای شما بحث کردیم میگه خواندن این بحور برای شما باید به نوعی راحت شده باشه خب بحر خفیف چطوره؟ میگه مفتاح البحر مفتاه بحر خفیف یا خفیفن خب خفت بهل حرکات تو یا خفیفن خفت بهل حرکات تو یا خفیفن خفت بهل حرکات تو فایلاتون مصطفی آلن فایل فاعلاتو. این فایلاتون خوب این بهرام از دو نوع تفعیل تشکیل شده فاعلاتن و مستفعلون و هر مصرعش دو تا داره وسطش مستفعلون یعنی فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن این بهره خفیف پس اگر تفعیل کردیم در درامد بعد مستفعلن درامد آمد بعد ومصر اول دوباره فالاتن مستفعلن فالاتن مصر دوم این بهر بهر خفیف است بهر خفیف فالاتن مستفعلن فالاتن فالاتن مستفعلن فالاتن کدید بهر رو ببینید یا خفیفان ای خفیفی که خفت بهل حرکاتو که حرکات زرباهنگ شعر شاعر در آن سبک است ای بحر خفیفی که حرکاتو و ریتم و زرباهنگ شعر در آن سبک خفیف راحته پس بحر خفیف میگه قاعدش اینه که ضرب آهنگ در او سرعت داره اسم همینم بهش گفتن خفیف داره. یعنی بهریه که ضرب آهنگ توش سرعت داره و خفت داره سبک یا خفیفن خففت بهل حرکات یعنی حرکات شعری ضرب آهنگ شعر در آن سبک این خفیفاً، مناداست منادای شبه مزاف به میگن که صفت داره درست شد؟ اون خفت به حل حرکاتو صفت این خفیفنه منادای موسوف است به خاطر همینم منصوب شده منادای شپه مزاف گای اوقات منادای شپه مزاف اون متعلقش فاعیلش مثل یا حسنا وجهه. ضمیر اوقات مفعولشه مفعولش مثل یا طالعن جبلا، ای بالا روند کوه را. ضمیر او مجرورش یعنی مز جار مجرورش. مثل یا عامرن بالمعروف یا ناهین عن المنکر، اینا رو خوندید، اونا ده به یا حسنن وجهوهو یا طالعن جبلن یا آمرن بالمعروف یا ناهین ارمان کرد گاهی اوقات هم به شکل صفت مصوفه مثل همینجا یا خفیفن خفت بهل حرکات. مثل دعای کومل که میگه یا آلمن لا یعلم آخر دعای کومل یا آلمن لا یعلم یعنی لا یعلمو یعنی ای عالمی که درس نخونده تعلیم داده نشده علمش مال خودشه اکتسابی از جایی نیست علمش ذاتیه یا عالمان لا لا یعلمان جمله بعد از نکره بشه صفت. اینجا خفت به حرکات حرکاتو جمله بعد از نکره شده سفر. یا خفیفا خفت به حرکات حرکاتو فائلاتون مستفعلون فائلاتون و هو منال افهر شائعت این خفیف از بحرهایی که در بین شعرا شروع داره خب چون راحت تو شعر گفته میشه و شعرا هم جایی رو که بتونن راحت تو شعر خودشون رو بگند و ساختارش ساختار سبک و تندی باشه او از دست نمیدن دیگه هیچ کسی بحر راحت رو رحانه بکن لذا شعر در بحر خفیف زیاد است و من منالعب خور شاععت فلقصاید العربیه دی. از است که شیوع دارد در قصاید عربی در قصیده ها ما این بحر و تعلف من تفعیلتین مختلفتین از دو تا مختلف تشکیل میشه فاعلاتن و مستفعلن عل النحو التالي فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن تغییراتی که عارض میشه بر این تغییراتی که عارض میشه بر این بحر, بر این بحر. تغییراتش زیاد نیست یک یک از تغییرات ولتی تطر و حاضلبه یک ذهاف الخبن که قاعدتا به اونی هم که داخل بشه بهش میگن مخبونه به اون تغییرت چیه و هو حذف و حرف سانی از ساکن من تغییرت. حذف حرف دوم ساکن از تغییر برشو. هر دوتا تفعیله ها فا, فا علفش ساکن مستفعلان سین ساکن پس هر دوتا حرف دوم ساکن دارند. و حذف حرف دوم ساکن رو بهش میگن زهاف خبن زهاف و این زهاف خبنه و هوه حذف حرف از سانی از ساکن و هین ید قلو علا فائلاتون یغیر و هایلا بشه فائلاتون علفش هست میشه و هین ید مصطفعلون نشد؟ وقتی که داخل میشه بر مصطفعلون یغیرها و هایلا مفائلون مصطفعلون میشه مفائلون و دخول حاضر زهاف علا مصطف علون فیل لازم یه تبصر است. این زهاف اگر بر مصطف داخل بشه در مجزو لازمه یعنی باید داوش بده در غیر مجزو ند بیدید. اگر غیر مجزوع باشه گوش کنید غیر مجزو باشه مصطف علون اصلا تو هشبه وسط بیته ایش لازم نیست. چون جایی مجزوء علت نمیشه چون علتش توی ضرب و عروسه اگر مستفعلن تو تام باشه و این ذهاف خبن بهش داخل بشه بشو مفاعلن قابل ادامه نیست ولی اگر ما مجزوع داشته باشیم مجزوع یه فایلاتون از این ور یه فایلاتون از اون ور میفته مستفعلن ها میشن آخر مصرع میشن ضرب و عروس اونجا مستفعلون اگر یک موقعی بهش داخل شد زهاف ازمار شد مفاعلون اونجا لازمه جاری مجرای علت و دخول هاز از زهاف الا مستفعلون فلمجزوء لازمون لازمه یعنی چی یعنی یجبان یتقید به شاعر و لازم است که شاعر بهش مقید بشه این تموم شد یک وقف تامه بکثرتن اینو کاش جلوتر میگفت می گفت دخول حاذا از فی تامه بهکسرته دخول این ذهاف در تام خیلی زیاد خیلی زیاد میشه که فاعلاتون میشه فعلاتن مستفعلون میشه مفایلون خیلی زیاد خیلی زیاد لازمم نیست دخولش در تام خیلی زیاده لازمم نیست اما دخولش در مجزوع اگر در مستفعلون باشد جاری مجرای علت و شاعر باید بهش مغایر بشه خب اینو دو علت تشییذ علت تشییذ علت تشییذ که به اون تفعیله‌ای که داخل میشه بهش میگن مشعسه مشعسه علت تشعیز به اونی که داخل بیشه چون و مشخصه وحیه فل حرف الاول و اون عبارت هست از حرف حرف اول یا دوم از وتد مجموع فرق نمیکنه چون وطد مجموع از دوتا متحرک ساکن تشکیل شده اول و دومش متحرک که حالا اولی اولین بگو شده یه متحرک دومی رو بگو شده یه متحرک از حرف ال اول حرف اول اولی اول ثانی من الوتد المجموع و تدخل فا اعلان یعنی الان نگاه کنید فائلاتون یه سبب خفیف داره خط تیره یه وتد مجموع داره یه یو یه خط تیره دوباره یه سبب خفیف یعنی شما میای یه متحرک رو حذف میکنی خب حالا یه متحرک را از اون وتد مجموع حذف کنید یعنی اون یو هست میشه می شه سه خط تیره میشه مفعول علت تاشیز که یا حذف حرف اوله یا سادی من الوت المجموع و تطق الفاء لاتن فتغير مفعول میگه خب این علت چطوره میگه و هي علت تجری مجرى ذهب این علتیه که جاری مجرى ذهابه یعنی ادامه پیدانه علت یعنی تو عروض و زرب داخل میشه فقط تو هشم نمیاد اون علت علته که تو عروض و زرد میاد تو هشم نمیاد ولی از اون علتهاییه که شاعر لزومی ندارد ادامه بش بده خواست استفاده میکنه نه استفاده نمیکنه جاری مجرای زهافه. و به هیه علتون تجری مجرای زحاف فی عدم لزوم در عدم لزوم که واجب نیست شاعر نامه بده جاری مجرای زهافه. این علت فلا یه تقییدو بهش شاعر شاعر مقیلی به این نیست میتونه ادامه نده و تو سم معد دخلت علیها هذه زهل مشعسه اون تفعیلی که این بهش داخل بشه بهش میگن مشعسه پس این اصلا نمیتونه یه نوع درست کنه چون قابل ادامه نیست نمیتونه یه نوع درست کنه بلکه گاهی میاد گاهی نمیاد علت به دلیل اینکه تو ضرب و عروز دیده میشه ولی اگر زهاف بود باید تو هش هم ولی جاری مجرای زهافه یعنی علتیه که شاعر مقیده به اون نیست مثل زحاف حالا انواع و بحر خفیف بحر خفیف چون خیلی استفاده میکنن و خیلی بهش علاق نندند. به خاطر اینکه که زرباه داره. میگه بهر خفیف ذکرل الاروزیگونه للخفیف انواعن. عروزیگین برای خفیف انواع مختلفی کرده. انواع بهر خفیف ذکرل الاروزیگونه للخفیف انواعن. برای خفیف انواع مختلفی کرده، الا ان المشهور منها هو و التام صحیح اونی که مشهوره و شعرها بیشتر از همه استفاده ازش کرده 70 80 درصد قصایدشون تو اون گفته شده تو اون خفیف تام صحیح. یعنی صحیحه خفیف تام یعنی فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلات تام صحیح یعنی چیز قابل ادامه توش نیست. و یلیهه و بعد از این تام صحیح در خفیف و به دنبال این میاد مجزوع المخبون این مجزوع المخبون مجزوعه یعنی یه فایلاتون از این ور یه فایلاتون از اون ور حذف شده مخبون یعنی زهاف خبن بهش داکت شده که ما گفتیم زهاف خبن اگر در مجزوع این بحر بیاد جاری مجرای علته و شاعر باید ادامه بده این مجزوع مخبونش خیلی زیادتر از مجزوع صحیحشه خب پس دران شد یکی خفیف تام صحیح و به دنبال اون میآید آید یعنی, یعنی یقع و بعده بود بعد از این نوع هست مجزوع مخبون و نهنو فی بحث نهازا و ما توی این مبحثی که داریم توی این کتاب نفتس رو علا حازین نوعین و همین دو نوع که شیوع کامل داره اکتفاق میکنیم فرقصای دل دو دونو یکی خفیف تام صحیح و دیگری مجزوع مخبون و کلا تمام میشه خب یک الخفیف و از و از صحیح خفیف تامه یعنی فایلاتون مستفلون فایلاتون فایلاتون مستفلون فایلاتون صحیحه یعنی چیز قابل اعلامه توش نیست ما کانت تفعیلت و عروزهی فایلاتون عروزش فایلاتون و کانت ضربهو که زالک ضربشم فایلاتون صحیحه دیگه تامه وفی هازن نو تدخل علت و تشئیس. علت تشعیس گاهی اوقات داخل میشه ولی بگید قابل ادامه نیست وفی هازن نو تدخل و علت و تشعیس الان بهی، بر ضربش داخل میشه یعنی تفعیلش شون به بکسرته یعنی معکسرته در این کسی در زیاد داخل میشه به طور زیاد الا انها لا تلزموٚن جز اینکه این زیاد نیست کما ذکرنه همونطور که ما گفتیم این لازم نیست زیاد داخل میشه اما لازم نیست و فی حاذا النور و, و علت و تشعیص در این نوع داخل میشه علت تشعیس میشه مشعصه اون هم در ضربش دیده میشه خیلی زیاد هم هست جز اینکه لازم نیست کما ذکرنه یه نفر میگه ا آقا حالا یه سوال اینجا پیش میاد اینو جواب بدیم. یکی میگه آقا ما اگر مثلا علت تشئیز داخل کنیم وزن به اعتماعی میشه. فائلاتون مصطفعلون فائلاتون فائلاتون مصطفعلون مفعولون. فائلاتون مصطفعلون مفعولون. اینطوری میشه. میگه بله. میگه خوب بیت بعدی میشه فاعلاتون مصطفالون فاعلاتون فاعلاتون تو یه دونه از بیت آخرش میشه مفعولن تو یکی میشه فاعلاتون این دوتا نمیشه که یکی بگه مفعولن اون یکی بگه فاعلاتون آیا این دوتا موسیقیشون یکیه معمولا باید آخر بیت که قافیه ها هستند یک زرباهنگ مناسب داشته باشه شکلی داشته باشن که گوش آدم آزار نبینه آدم یکی رو در قافیه در اون آخرش میشنبه مفعولان دیگری نمیشنبه فاعلاتون دوباره مفعولان مفعولان فاعلاتون این نمیده میگه ببین تو وقتی که تو زبانت میگی مفعول فاعلاتون اینطوری میگی این دوتا با هم تناسب ندارند مفعولون فائلاتون می از این دوتا ضرب و آهنگشون بارد. ولی این وقتی که توی بیت میاد متحرک ساکن مفعول فائلاتون اونجا ضرب آهنگشون به این ناهم که توی مفعولون و فائلاتون تو میبینی نیست اونجا راحت موسیقیش گوشنوازه ضرری به موسیقی نمیزنه لذا میگه ولا تذر رو به موسیق شعره ضرری نمیزنه به موسیقی شعر نگران نباشید این فاعلاتن و که شما توی تفعیله میشنوید این تو موسیقی به این شکل ناهمه نیست نحو قول عبل جزار مثل قول آقای عبل جزار جزار یعنی بقا چیز قصاب جزاره یعنی قصابی کردن سربریدن و زب کردن حیوان و قصابی کردن به قصاب میگن جزار یا آقای ابوالحسین حسین جزار که قصابه این بیت رو گفته حالا ببینیم چیم این قصابی بوده جزاری بوده بعدا آمده و شاعر شده قصابی رو گذاشته کنار حالا میگه که صد رحمت به اون غصابیه. اون خیلی خوب بود. این شاعر شدن ما به چه دردی میخوره؟ مقایسه بین این دوتا میکنه ایچی چیز قشنگی میگه نگاه کنید. میگه کعیفه لا جزارت ما اش باز ببینید بیت مدربه. ما اش تو حفاظن و احجرال با میگه کیف لا اشکر الجزاره از جزاره یعنی اون قصابی اون قصابی کردن گذشته میگه من چجوری شکر گزار اون قصابی گذشته نباشم تا زنده هم ما این ما یعنی مدت عیشی که مای مستریه ظرفی است که امروز میگه چجوری من تا زنده هستم شکر اون قصابی رو نکنم حفاظن از جهت اینکه که ما رو حفاظت میکن آبروی روی ما رو داشت اون آبروی آب روی ما رو داشت و ما رو حفاظت میکن و احجرال آدابا و چگونه من کنار نگذارم این شعر و شاعری و ادبی رو که الان به دست نوردم و چی گفت گفت ما چطور نوکری اون قصابیمونو نکنیم که آبروی ما رو داشت و این شعر و ادبیات و شعر و شاعری رو رها نکنیم یعنی اینو باید بندازیم دور بریم دور همون قصابی خودمون بگردیم و اون قصابی رو شکرش رو بگذاریم من چطور شکر او رو نگذارم و اینو رها نکنم در طول دوران زندگیم مدت ایشی ما عشتو حفاظن یعنی از جهت محافظتی که ما رو میکرد آب ما رو حفظ میکرد من چطور اینو رو نکنم و اونو رها نکنم میگیم چطور مگه اون چه خوبی داشت اون قصدابی و این چه بدی داره که میگی من چرا اونو بل کردم اومدم سراغهی اینو باید بندازم دور برگردم اون چرا میگه و ها به ها میخوره به جزاره و به ها سارت الکلاب با اون قصابی شده بودن تمام سگها الکلاب تمام سگهای شهر با اون قصابی شده بودن ترجینی که سخت به من امید داشته رجا یعنی امید بس رجا باب تفعیلش برای مبالغه است یعنی خیلی امید بس میگه اون قصابیه باعث شده بود که تمام سکها چشمشون به دست من بود همه سکها دنبال من را میره همه سکهای شهر من میشناختن راه که میرفتم همه سکها دنبالم وقت میکردند و دو دنبال من می دویدن به ها رو مقدم کرده متعلق به اون ترجیدیست برای حسره فقط اون قصابی باعث شده بود که من آ، تمام سگهای شهر به من سخت امید برنده و به شعر، و با این شعر و با این ادبیاتی که الان پیدا کردم و شعر شاعری و با این شعر کن تا هر کلا با کن تا هر جل مازی من امید بسته من امیدوارم به سگها حالا من هی باید دنبال سگها را بیفتم و کنم تا اونا یه چیز به من بدم. منظورش دوم از کلاب اون کلاب اول حقیقته یعنی سگون شد این کلاب دوم سگنما هاست استعاره مصرحه استعاره مسرحه اصلیه است یعنی اون افراد پستی رو که این به قول خودمون شعر برای اونا میگه و اونا باید یه چیزی جلوی این بندازند سله بهش بدن و رو گفته سکها و با این شعر الان من امید بستم به سکها اونجا سکها ترجی نیست سخت به من امید داشتند اینجا کن ارجو نه ارجی اینجا من یه امیدکی که بستم به این سکها امیدواری من هم به اندازه اون سک ها که دنبال خودم میافتادن نیست بدن یا ندن یه یا امیدکی داریم هی میریم سراغ این آقا جلوش یه شعری میخونیم که تعبیر کرده یه وقوقی میکنیم براش اون یه چیزی به ما بده حالا آیا بده نده یا امیدی بهش داریم. به بها سارتالکلابو ترجینی و, و به کن کنتو عرجل کلابا صد رحمت دوم، قصابیمون که آقای خودمون بودیم سگا دنبالمون می سخت به ما امید داشتن حالا اومدیم شعر شاعری شعر میگیم ما دنبال ممدوح میدویم برا شعر میگیم تا اون یه چیزی دست کنه تو جیبش به ما بده. تازه خیلی هم امیدوار به دادنش و سله و عتاش نیست نگاه کنید کیفلا اش فائلاتون سالمه کرال جزا مفائلون باشه مخبون است زعاف خبن تحصیلی نده رتما اش فائلاتون مخبون است هیچ تو حفاظن فائلاتون مخبون است و احجرون مفایلون مخبونه هست آدابا آدابا ببین مفعوله این مشعصه هست این لزومی نداره ادامه داره ولی علته تو ضرب بیت اومده علته در ضرب بیت پیدا شده ولی لزومی نداره که شاعر ما اون رو بگید ادامه بده برشد. این چون جاری مجرایه زحافه او خب بعد نگاه کنید میگه و به ها سا فعیلاتون رتل کلا مفعایلون مخبوننید با جی فعیلاتون مخبونه هست نی و به شع فعلاتون سالم هست رکنتوال مفایلون مخبونه است جل کلابا فایلاتون ببین الان ضرب بیت اول اومده مفعولون یعنی مشخصه ضرب بیت دوم، اومده فایلاتون یعنی سالمه پس این علت جاری مجدای زحافه لازم نیست اگه لازم بود اینم باید میشد مفعولم ولی واقعا به موسیقی شعر هم آسیبی نزده درسته که مفعولون و فائلاتون به گوش آدم که میگی یکی بگه مفعولون اون یکی بگه فائلاتون آدم احساسون دوتا ناهماهنگ هست ولی وقتی دوال قالب شعر میاد این احساس ایجاد نمیشه درست شد؟ اون ضرب بیت رو به هم نمیریزه اون آهنگ بیت رو به هم نمیریزه می وان کلی شعر می خونیم خیفلا اشکر الجزارت ماعش تو حفاظن و احجر الادا و بها صارت الكلاب ترجي نی و به شعر کنت ارجل اهجر احجر الادا با تو ارجل کلاب میونیم با هم ناهمهنگ بیس این الان خفیف تام صحیح بود. ان ملاحظ اونی که ملاحظه میکنیم اینه ان زهاف الخبن قد دخل علا تفعیلت و سالست و رابعت و خامست فل اول که ایت خلوش لازم نیست زهافه و علا اولا و سانیه و سالسه و خامسه فل بیت در بیت دوم هم اینا داخل شده با زهاف لازم نیست میتونست داخل نشه و علت و تشئیس. اما علت تشعیز قد دخل الان تفعیلت زر فیل بیت اول علت تشعیز داخل شده در تفعیل زر در بیت اول به جای فایلاتون شده مفعولون ولن یتقیید بهش شاعر و فی تفعیلت زر فیل بیت اما شاعر ما مقید بهش نشده در تفعیل زر در بیت دوم. چرا؟ چون این علت جاری مجرای زهافه لازم چرا داخل نشده حاضر علت و شاععتون فر خفیفتان این علت شیوع کاملی داره در خفیفتان خیلی جاها به جای فاعلاتن میشه مفعولون تو زربش ولا یلتزم به شاعرم شایر. بهش مرتزم نیست و در واقع علتیه که جاری مجرای زهافه این تمام شد اما خفیف مجزوع مخبون خفیف مجزوع مخبون خفیفه یعنی فعالاتون مستفعلون فعالاتون مستفعل یه فعالاتون از این بر یه فعالاتون از اون بر هستش درسته این خفیف بوده لیش یعنی که یه فعالاتون یه فعالاتون از اون بر هست شده شده فعالاتون مستفعلون فعالاتون مستفعل مخبون درست شد. اونیه که زحاف خبن بهش داخل شده و گفتیم زهاف خبن اینجا در واقع به نوعی به جاری مجرای علت میشه. در مجزوع زحاف خبن لازمه جاری مجرای علت میشه. یعنی مستفعلن رو میکنه مفائلن و دیگه ادامه میده. میگه که دو، الخفیف و المجزو المخبول و هو ما بقیه علا عربه تفعیلاته مجزونیه که چهار تا تفعیله داره علا نهب تاریف، قائلاتون مصطفیلون، قائلاتون مصطفیلون الا انه زهاف الخبن ید قلوه علا تفعیلت مصطفیلون فیه عروزن و ضربن زهاف خبن هم به عروزش تافل میشه به ضربش یعنی مصطفیلون ها میشه مفایلون چنان واقع میشه فاعلاتون مفاعیلن فاعلاتون مفاعیل و تو آخرام هم, هم توری داره پیدا عروزه شد و یغیروا حالا مفاعیلن خیلی خب ذربش آهنگش تونتر میشه رونتر میشه شاعرها خیلی دوست دارن اینو که بگن فاعلاتون مفاعیلن فاعلاتون مفاعیل حالا اگر بگم فاعلاتون مستفعلن فاعلاتون مستفعلن این دیگه مقبول نیستا عام صحیحه میشه مجزوء صحیح مجزوع صحیح اما اگر بگم فاعلات و این میشه مجزوع مقبون این زیاد الا ان ذهاف میاد خل اللا تفیلت مستف الانفی هر روزن و ضررب و ی حالا و حز از زهها فنای جری این ضاف در اینجا جاری مجروع علت من حیث لزوم جهت لزون جاری مجر علت نه با قول شاعر مثل قول شاعر من. لا تسل روحه روحهو فوق راحت این چرا راحت تون شده لا تسل روحه روحهو فوق راحت فهده ای یا عواصفو فجلا من جراعته و همین طور داره چه به نوعی مثلا حماسی شده لا تسل یعنی لا تسأل سال یسالو سعد یسالو همزه تالین به الف میشه میشه سال یسالو بعد فعل امرش هم میشه سل سلونی اسرائیل سلونی قبل هم تفقدونی یعنی سوال کن یعنی اسعلونی. لا تسأل یعنی لا تسأل میگه لا تسأل عن سلامته میگه سوال نکنه از سلامت فلانی یه نفری که جان برکفه اونو داره میگه میگه از این آدمی که جان برکفه و آدمی که جانش و کفه دستش گذاشته و در میدان جنگ است مدام از سلامتیش سوال نکنه چرا؟ میگه روح و, و راحته روح یعنی جانش باقی راهتی هی راهه یعنی کف دست این چون این آدم جونش کف دستش گرفته آدمی که جون خودش رو کف دستش گرفته باشه هر لحظه ممکنه از کف دستش بیافتی شما یه لیوانی رو کف دستت بگیری همینطوری خب یه تکون بخوره میافت میگه این آدم جونش کف دستشه پس بنابراین سوال از سلامتیش نکن ها لا تسل عن سلامته این روح و حوف و استیناف بیانیه جواب این سؤاله که چرا سؤال نکنم از سلامتیش میگه چون روحش رو کف دستش کرد فهدئی فهدئی ای هده ایهده او یعنی آرام شد فهدئی یعنی آرام باش خدوع یعنی آرامی فهدئی یا اواصفو ای توفان ها آرام باشید. معمولا کسی که شور و حالی دارد میگن طوفانی است میگه طوفان ها سرجاتون بشینید آرام باشید. چرا چرا فهدی خجلا مفعول الله برای فهدی خجلا من جراعت به جهت خجالتی که میشید از جرأته از بی او، جان برکفی او طوفان ها سر جاتون بشینید خجالت بکشید از جان برکفی او شما رو میگن طوفان به طوفان این طوفان تر از شماست خجلن من جرائته من جرائته متعلق خجلن به جاعت فجالت کشیدنتون از جرأت من او. یا اواصفو او. جل من چرا خوب آیا بیت مسلع دارد یا ندارد بله لا تا مثل هم هو فوق راحته و بعدی فهمده ای یا حواسه بودیه بتون اینجا بهتون مسللح باش نباشه هم فرقی نمیکنه چرا چون بگو فاعلات مفا فلات مفاات در واقع عروزش تا به هست در همه یعنید نگاه کنید لا تسل ان سلامته روح و حوف ای یا عواصف و خجلن من جراحته لا تسل ان فائلاتون سالم است. سلامته مفائل مقبون است. اینجا لازمه که مقبونه باشه روح و فایلاتون سالم هست. قراحته مفایلون. مقبونه تا آخر عبیات همینطور تفعیله دوم و چهارم مفایلون می آید. ای یا فایلاتون. عواصف و مفایلون. ببین مفایلون. من فایلاتون. اینجا مقبونه اومده لزومی نداره. میتونستن تونستن فایلاتون بیاد چون تو هش جراعته ولی این چرا این مخبونه بودنش لازم تا آخر ابیات اون تفعیله دوم و تفعیله چهارم مفایل مفایلن حالا تفعیله اول و سوم که وایلاتون ممکنه بشه فیلاتون اشکالی نداره اون ممکنه بشه اما این دوتا تا همین فهد یا اواصفو خجلن من جراأته الملاحظو اونی که ملاحظه میشه و دیده میشه فی زید در این دوتا بیت اینه ان الخبن این اینکه ذهاف خبر قد دخل تفعیلت مستفعلون زحاف خبر داخل شده به تفعیل مستفعلون اروزن و ضربن هم در اروزش هم در ضربش و لازم هم هست خبه لازمون در اینجا لازمه در مفایلون در اروز و ضرب لازم اما وقتی رو لازم ان فی غیرها ولی در جای دیگه که فایلاتون هست اگر یک زمانی فایلاتون شد مثل بیت دوم که سومین تفیلش تفعیلش خجلن من فایلاتون اومده لازم نیست و غیر و لازم فی غیرها کما هو، ول حال و فی تفعیلت فایلاتون همونطور که شما این حال رو در تفعیل فایلاتون میبینید به شطر ثانی منن فیت ثانی در مسران دوم از بیت دوم در مسران دوم از بیت دوم شما دارید این رو نبید. که به جای فائلاتون شده فائلاتون خب این ضرباهنگش خیلی خیلی تندتر میشه یعنی در واقع اگر شما میبینید که شعرا عراب این طرف آمده اند به خاطر همینه که گفتش خیلی زیاد میگن پس میشه فایلاتون مفایلون فایلاتون مفایلون تا آخر یه ملاحظه نگاه کنید توی قسمت تامش که شما بیت ما داشتیم کیف اشکرل کیف لا اشکرل جزارت ما اش تو حفاظن و احجرال آدابا و به ها سارت الکلاب و نی و به شعر کن تا هر کلابا میبینی هر دو تا بیت فیت مدوره. اینجا میخواد یه تفسیره بگه میگه ملاحظتون از تدویر شای اون شای اون فی بحر تدویر خیلی زیاده یعنی اگر ما یه دو بیتی دیدیم سه بیتی دیدیم چار بیتی دیدیم یه خسیده دیدیم که توش تدویر یعنی یک کلمه نصفش اولین چیزی که به ذهنمون برسه قبل از اینکه که اصلا تقطی کنیم و غیره به نظرمون بیاد که این بحر خفیف باشه چون تو بحر خفیف تامش مدور بودن خیلی زیاده از تدویر و اون فی بحر خفیفه فقلمان نرا فی بحر خفیف میشه کم میشه ببینیم یه قصیده رو در بحر خفیف و فی ها بهتون و بیت مدور نداشته باشه اصلا تقریبا محاله همه قصایدی که توی بحر خفیف گفته شده امدتا دارای بیت مدورند و تدویر در این بسیار بسیار شاید خوب بحر خفیف رو تمام کردیم شما این فرازهایی رو که با هم خوندیم تا به حال جمع میکنید میکنین انشالله بهر بعدی بهر رمله که الله هفته آینده برای شما خواهم خون و در خدمت شما خواهیم بود شما رو به خداوند متعال می سپرم انشالله که در پناه خداوند در کمال صحت و سلامت باشید و مباحث رو هم یه مقداری به قول خودمون بازنویسی کنید و جزوی کچولو حتی در حد یه نصف صفحه میتونید مطالبش رو خلاصه کنید، یکی دو بار که نگاه کنید، حفظ میشید، نگران هیچ چیزی نباشید، استراب و استرس اصلا نداشته باشید، به خداوند متعال توکل کنید، سلامت خودتون رو از خداوند متعال بخواهید و خودتون هم در جهت اینکه استرام و استرس نداشته باشید، که سلامتیتون رو حفظ کنید، تلاش کنید. التماس دعا موفق و معلیت باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته